ذاهر کن السلام يا الله سلام و علای تنیا اطی نتان سیدی مولای سیدی مولای اقسم نوا و ادراک نو ولا تهلکنو سلام و علیکم جميعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ربش رحلی صدری و یسرلی امری محلال و اقدتم من لسان یفقه قولي الحمد لله رب العالمين و صلات و علا خاتم المرسلین طبیبنا محمد و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله في العالمين عجل الله فرجه و الله نصرته و دعاه و خيره و لعن و علا اعدائهم اجمعین او عباد الله به تقوى الله شما بندگان خوب خدا رو و خودم رو به تقوای الهی دعوت میکنم تقوى حوشمندیست تقوا پرهیز از قفلت است تقوا توجه به خطرات نفس اماره و سیامت از آسیب‌های هوا و هوس است و تقوی مقابله با بیدینی و بیدینهاست، هست تقوا سنگر است تقوا سلاح است تقوا بستیرت است تقوا چراغ روشن هدایت الهی برای بندگان خدا در قرآن کریم آثاری که برای تقوا مطرح شده به نظر می‌رسد جالبترین و مهمترینش این است که خدا فرموده است ان الله يحب المتقین انسان با تقوا انسان تقوا پیشه محبوب خداست شما نعمت بالاتر از محبت خدا در عالم پیدا نمی کنید کسی محبوب خدا باشه خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست ان الله اضا احب و عبدن لم یدخل و نار خدا راضی نمیشه دوست خودش رو بسوزاند نمیگذاره آدم جهنمی بشه اگر کسی محبوب خدا شد یدخل هل جن خدا رو بهشتی میکند و در این حدیث قرب نوافل که در گفتمان آرفان ما و انسانهای بیدار دل ما هم گفتمانش رایج است هم خودش خط است و توجهش دلنگیز است کسانی که بر التزام به واجبات و فرائض الهی به مستحبات و نوافل به خاطر قرب به خدا لایزال یتقرب و علی یلعبد به نوافل همواره بنده از طریق نوافل به من نزدیک میشه خدا میفرماید حدیث است اونقدر استقامت میکند در انجام نوافل حتی احبه تا وقتی که درجه محبوبیت را از من بگیره وقتی مدال محبوبیت نصیب شد و وقتی که او او نیست مرحله مرحله فناست من چشم او میشم من دست او میشم من زبان او میشم اگر کسی میخواد لسان الله بشه عین الله بشه یاد الله بشه خدا همکاره او باشه و او با خدا ندار باشه و رنگ خدا بگیرد باید رعایت تقوا رو بکنه. تقوای که این کنسان در خلوت بین خود و خدا حسابی داشته باشه، سر نظر از اینکه مردم چه قضاافتت میکنن، ببین خدا از او راضی هست یا نه. ببین امروز اگر مرگ آمد با پرونده، بی اشکال داره به محضر خدا میره یا خدای نخواسته با نگرانی داره میره قضاوت دیگران و ملاک نیست خودم به خودم نمره میدم یا نه خودم این نمازهامو قبول مقبول دارم یا نه روز میگذرد شب میگذرد زبانم شب و روز پاک بوده چشمم پاکیزه بوده خانواده آزاری نداشتم همسایه آزاری نداشتم ظلم به مشتری نداشتم مسئول اداره هست حقوقی که میگیره بین خود و خدا حجتی داره داره کار میکنه به مردم که فقط پروشی نمیکنه جستی که نداره مواجه بگیر مردم هست و جستش جست خدمت گذاریست محبت است تکبر نداریم حسد نداریم ریا نداریم تضبیر نداریم تقوا باید در مستاقش آدم تو خودش بگرده ببینه که آیا پوششی داشته که این آتشهای جهنم که برش برخی از اونها رو ایمانش رو نسوزنده باشه سعادتش رو نسوزنده باشه الله یحب المتقیم در بحث های گذشتمون در ماعده الهی متنعم بودیم قرآن معدوبت الله سفره خداست از سوره مبارکه فاتحه الكتاب. کتاب عدل قرآن همه پذیرایی های الهی که پذیرایی پذیرائی است و چیزی خدا برای مهمانهاش کم نگذاشته همه امور ضروری و امور راجه رو ارزانی داشته اون چه در قرآن برای انسان عنوان تکریم خدا واجباتی رو بیان فرموده محرماتی رو مشخص فرموده معارفی رو اخلاقیاتی رو در اختیار انسان قرار داده یک کبسول خدای متعال درست کرده که تمام عناصر لازم مواد مفید در قنار کریم رو در این کبسول خلاصه کرده و اسمشو گذاشته سوره حمد و سوره فاتحه کتاب رسیدیم به این جمعه ایا که معبد و ایا که نستعین در اینجا بعض بزرگان بیانی دارند که مقدمه بحث شفاعت ما میتونه باشه و اون این است که عبادت در قران کریم در سه مجرا به کار رفته است یکی در مورد اطاعت عبادت گفته شده است فرمود ادم اخذ الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان ان هو لکم عدو مبین و انعبدونی حضا سراط مستقیم در سوره این که یاسین این اهدنه سراط المستقیم هم که بعدی است، اونجا کمک میکنه سرات مستقیمی که یا کنعبد و یا کنستعیم و در استعانت از خدا اهدنه سراط المستقیم رو میگیم در این آیه مشخص شده علم اعهد علیکم یا بنی آدم الله تعبود و شیطان آیا با شما پیمانی ندارم من که شیطان را عبادت نکنید معنایش این است که به بست بسته به القاعات شیطان شما گل نخورید اطاعت شیطان نکنید و عنع بندگی من یعنی اطاعت من رو بکنید حاضر سراطون مستقیم. نشته دوممی که در عبادت در قرآن کریم به کار رفته است عبارت است از خضوع و تذلل انسان در برابر کسی نهایت خضوع رو تزلل رو نرمش رو خودشو پایین بیاره و طرف رو بزرگ به حساب بیاره این هم فرمود فقاد انو منو لبشرین مثل نا و قومهما زنا بدون این منطق فرعون است به موسی و هارون که تو تو انسانند و قوم او در برابر ما زلیلند موقعیتی ندارند خضو میکنند وقعی به آنها نمیگذاریم و مرحله استفام تعلق هست یعنی ترستش که اونی رو که در ذهنها میاد از عبادت همین مرحله استفام است که تعله از قل انما عمر تو اعبد الله ولا اشکه به تمام انبیا آمدن بشر را به الوهیت خدا به پرستش خدا دعوت کردن هر پیغمبری آمده است ام الله بچتنه و طاقود بنده خدا باشید خدا پرست باشید و تاغوت حتیب باشید اینکه انسان فکرش قلبش جوانهش جوانهش مملو و از عشق خدا باشد و بیقرار او باشد و عشق و پرستش رو نثار ذات او بکند و در برابر دیگران ترستشی نداشته باشد این است که همه انبیاء این تابلو رو نصف برمودن و بشر رو به توجه به این تابلو دعوت کردن یا که معبوده خب این پرستشی که مال پروردگار متعال است و ما در این کریمه خدا فرزو کرده است نمیتونیم نگیم همه باید بگیم یا که معبدو. فقط تو را میپرستم یا استعمال کلمه در اکثر از معنا هم مدققین از این گفتند جایگاه دارد یا که معبدو. هم تو را میپرستم هم در برابر تو تذلل دارم کوچکم هیچم، فقرم نادارم زلیلم مسکینم و هم مطیع تو هستم زندگی من با دستورات تو مهندسی شده است کاخ زندگی من حرم و حریم زندگی من با معماری پیغمبر تو و با شرع تو من نفس میکشم و زندگی میکنم. حالا این یاک نعبد یکی اینه که چرا ما یاک نعبد میگیم و یاک اعبد نمیگیم. حتی در نماز شبهاتون، امیدوارم انشالله خدا این ثروت عظیم را این گنج پنهان را که واقعا گنج پنهان است پروردگار عزیز در قرآنش فرموده است کسانی که تتجافا جنوبهم عن المباجع یدعون رب دهم خوفن و شبها بستر راحت را تجافی میکنند خالی میکنند و برای ارتباط با خدا از بستر بیرون میآیند. تا خدا را از روی امید و ترس میخوانند خدا جو هستند جستجوی خدا یافتن خدا در سحرها میسور است کسانی که در اون لحظاتی لحظات که چه چشمهای عموم مردم به با آنها خدای بیدار را بیدار میبینند و با خدا خلبت سحر دارند و ما شب میخونند خدای متعال پرمد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین هیچ کسی خبر ندارد این این عشق خواسته میان عاشق و معشوق یک رمز پنهانی است که من هم همون گونه که او در خلوت آمده من هم برای او خلوتی رو منظور کردم که لا تعلم و ما اخفیه لهم احدی نمیدونه من چه برای او تدارک دیدم چه برای او ذخیره کردم اما وقتی پیش من میاد و ثمره نماز شب و خلوتش رو من به او نشون میدم گریه شوقش میگیره و اشک شوق از چشمان او فرو میریزد فلا تعلم و نفسون ما اخفیه لهم من قرة اعیون این نماز شبی که انسان در دل شب در خلوت سحر بین خود و خدای خود دارد در اونجا هم واجب از سوره حمد بخواند و بگوید ایا که و و ایا که مستعین. حق نداریم بگوییم یاک که و و ایا که استعین چرا ما یا که نعبد میگیم چرا حق نداریم ایا که عبد بگوییم این هم جز است که جای بحث دارد اما یک نکته از نکات مختلف و توجیهات دنگیزی که در این رابطه گفته شده است به محضر شما تقدیم میدارم وان این است که و اممن شیئن الا یسبحو سب خ به لا تفقهونه تفیح جمله ذرات زمین و آسمان اینا همه لشکر خدایند هم لشکر و قشون خدان هم عاشق خدا هستند، تمام خاکیان و افلاکیان تمام فرش و عرش ملک و ملکوت اونچه یوراز و اونچه لا یوراز اون همه سرود آشقانه هم خورن دائمان ذکر الهی در وجودشون متجلی و ساته است و همباره از کمون وجودشون به سوی خدا میجوشند مشتعل میشوند و آب میشوند که خود نباشند و فقط او باشد لیس فی غیر غیره دیار از اینکه هستش خجالت میکشد و میخواهد هستی خودش رو به فنا برساند الی الله تصیر الامور شما وقتی نماز شب میخونید وقتی سجده خازانه دارید فکر نکنید خیلی مهمید این خاکی که شما سر به اون خاک گذاشتید پا روی اون خاک گذاشتید این خاک هم میگوید تو بخون قدوس رب الملائکت و روح ایام ایام ازای سالار شهیدان است و روز اول سفر روز ورود کاروان تبلیغی امام حسین علیه السلام انسان‌های همیشه آزاد که آزادی واقعی و حریت را آنها بنیان گذاردند بر دنبال آزادی است باید گوشه چادر بیبی بی حضرت زینب سلام الله علیها را بگیرد تا رسم آزادگی از تعلقات را یاد بگیرد از امام زین العابدین علیه السلام در شام که سختترین مصیبت‌های های قالالله در شام بود مصیبت اینها قدم به قدم برای احدی جز این زرفیت قابل تحمل نبود نه روز آشورا جز اینها شهادت امام حسین رو تحمل کنن داغ علیه اکبر رو تحمل کنن تیر خوردن یک کودک چیز رو در دابد من من منظرهی که کنار گودی قتلگاه امام سجاد حالی پیدا کرد که ازت زینب نگران شد نه در شهر کوفه به به مجلس شراب وارد کردن دینا رو دم دروازه کوفه که اولین بار بود حضرت زینب گم شده خودش رو پیدا کرد ولی دیگه تو زمین نبود ماه آسمان شده بود یا هلالن لمبسته بچه این مصیبت های جانکاه هیچ کدومش مثل شام نبود امام سجاد علیه السلام بر حسب نقلی به نعمان ابن منذر چندین مصیبت رو در شام پرمودند برای ما وارج یکی این از صبح تا غروب یک راه کوتاهی رو تا غروب طول کشید ما رو ببرند چون همه به تماشا آمده بودند دفت میزدند، کف میزدند، پشت میدادن سنگ می‌زد، دوم این که از بالای بام ما بر سر ما آتش و خاکستر میریزن که فرمود آتشی به سرم افتاد دستم بسته بود نتونستم آتش رو جدا کنم اما من مصیبت سنگیم ترین بود که این سرهای بریده پدرم رو عمویم ابل فضل رو علی اکبر رو اینا را قاطیه که جواب بودن به این باش به تماشای اینا خودشون را به این محمله ها نزدیش فرمود ما را به محمله یهود و نزداره بودن اونجا تحریف کردن که اینا همون که در خیبر پدران شما را کشتند و اونا بنوان انتقام به ما هم می زخم زبان میزدند، من و ما را در یک خرابه ای سکنا دادند که سخت نداشت روزها از گربان به شما از بصوت مشتمش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم یدد ولم یورد ولم یکل له کتوبا احرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل و سلم علا رسولک و امین وحییک مبلغ رسالاتک سیدنا عبدالقاسم محمد و علاوه علین امیر المؤمنین و علاوه فاطمہ نساء النساء علمین الحسن و الحسین سید الشباب اهل الجنه و علاوہ المسلمین علي بن الحسین و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر علي ابن موسى و محمد ابن علی و ابن محمد و حسن ابن علی و الحنف صالح الحجت القائم حجت که علاق بادک و امنا بلادک به هم نتبله من اعدائه هم الله تبارک و تعالی. عسیم عباد الله و نفسی به تق الله تقوا پرهیز از گناهان در میان گناهان گناهی که خدا نمی بخشد شرک است ان الله لا یغفرو از این يوش رکبه و یغف رو مادون زاک غیر از شرک خدا زمینه امید به ما داده که هرچی کردیم با خدا طرفیم با کریم طر میبخشید. ولی خدا شرک را نمیبخشد شرک هم یک تا منگیر ماز و باید پناه به با خدا ببریم، و خودمون رو تا دیر نشده اصلاح بکنیم به اون ریاض ریاض شرک خفیه هست من به مسئولین اجرائی قضائی تقنیمی ارز میکنم که شما در حق ما دعا کنید ما هم برای شما دعا میکنیم یه خورده خدا تو کارمون باشه مرحومه شیخ جعفر ششتری الله مقامه در مباعدش دارد که پیغمبران آمدن جامعه رو به توحید دعوت کردن من شما را به شرک دعوت میکنم میگم خدا را هم به حساب بیارید برای خدا هم یه حسابی باز کنید آخه خدا هست به این مردم برسیم این مملکت را از این خطر نجات بدیم دشمن همه راه را تجربه کرده و شکست خورده به دو مسئله امید دارد یکی مسئله ایزیاد اختلاف دو قطبی کردنه بی اعتمادیه بی اعتقاضیه اومده قارت ایمان بکنه قارت اعتقاد بکنه که انقلاب ما انقلاب اعتقادی است و در اساس اعتقاد مردم انقلاب نکردند تا چیزی بگیرن. همه چیزیشون دادند که اسلام بیاد. امروز هم برای حاکمیت اسلام مردم همه چیز رو میدن از صادفانه میدن. بیایید ما هم مسلمان باشیم و از خدا بخواهیم و توفیم مسل مسلمان. این روز میگذرد میگذند. این ریاستها و. حباب روی آبه با یک طوفان آمده با یا توفانه میریم اما مسئولیت داریم امانت سنگین است و ما گذاشته شده است ما یعنی اکفر هم به الله الا و هم مشرکون اما مسائلی که از یکی مسئله عراجیفی بود که رئیس جمهور امریکا در جمعه گذشته به زبان همیشه خراب خودش اوورد زبان ناموزون بی انزباد و بی اخلاق خودش مطالبی که همین همینجور مضوع بیشتر توقع نبود اما باید ما خوشیار بشیم و بیدار بشیم که قضیه چیست معجزاتی که در انقلاب ما اتفاق افتاده است کفر و استکبار و دنیای سلطه این رو نمیتونه تحمل بکنه اون روزی که ما مسئله حسی نداشتیم موشک نداشتیم نفوذ منطقه ای هم نداشتیم در داخل کشور خودمون انقلاب کرده بودیم اونها این پدیده نو که پدیده حاکمیت دین در مجرای ولایت فقیه است این رو برای قارتگری خودشون برای پریکاری خودشون خطر می‌بینن ولایت جامعه رو به خدا دعوت میکنه اگه خدا حاکم بود هوا و هواپرستها خود به خود شکست می‌خورند این احساس عقده اینها این اینه که اینا این لیبرال دموکراسی رو با عنوان یک ایدعال موعود تلقی کرده بودند به خورد دنیا داده بودند که ما یه زندگی آرامی برای مردم آوردیم اون کعبه یا آمال دلها همینه و جز اینم هیچ امر دیگری قدرت تولد و بروز و ظهور و جلوه نداره خدا امام را معمور کرد سلام خدا بر امام باد نقطه است که از قماش انبیاس از قماش نوریان است کاری کرد که فقط انبیاتون این کاری رو کرده بودند و بی به شرق و غرب پرچم قدیر رو به دست گرفت و مردم رو به خدا دعوت کرد هم خودش رو و هم غیر خدا را همه را فقیر معرفی کرد و گفت سعادت دنیا و آخرت در این است که خدا خدای ما باشد ما هم بنده خدا باشیم این بندگی در اوج قدرت که اسمش دلایت است ولی بنده ترین است ولی فقیه ما خودکاخته ترین است خدا تست ترین است چون خدا در وجود اوست جامعه را هم به خدا دعوت می کند جامعه که با قدرت خدا با علم خدا آشنا شود این تند مذلت نمی دهد هی هات من نقبله امام این در تینت او در فرشت او در فطرت او بروز میکند کند در سرخم نمی کند برای شرق و غرب حسابی باز نمی کند حساب اصلی با خداست چون چون این واقعیتی رو اینها نتونستن نگذارن پیش بیاد پیش اومده بود جنگ رو تحمیل کردند و از نظر علمی هم باید با این جنگ کار ما را تمام میکردن اما جنگ نه تنها ما را نابود نکرد که به ما قدرت داد ایمان ما را بالا برد دانشگاهی با عنوان جبهه تسبیس شد دانشگاه توحید بود دانشگاه اخلاق بود دانشگاه ولایت بود دانشگاه عشق بود، دانشگاه ایثار بود، دانشگاه همت بود. به انسان ارزش داد، تا حال کجا بودی، با چه معامله می کردی؟ حال ببین جوانها کجا را نشان گرفتن، تا کجا می اوج آج بگیرن؟ یک دانشگاه انسانشناسی بود، یک دانشگاه ارزشیابی بود. خودیابی بود خیشتن خودمون رو در جبهه یافتیم چون در جهاد اکبر که در جبهه برای ما تدارک دیده شد با دم مسیحایی روح الله که خود به اون مقام رسیده بود و لذت بندگی رو چشیده بود و جز خدا چیزی در دل اون نبود، این جبهه آمد همه را در این زنجیره با خدا مرتبط کرد دزا نتیجه اقتدار دنیاوی و اخروی ما بود اینها هنوزم بیدار نشدند دجالند یک چشم بیشتر ندارند اونم چشم دنیابین است چون خدا ندارند چون با آخرت پیش نمی کنند اساساً ماهیت انقلاب ما را مردم ما را مکتب ما را ولایت ما را نمیتونن درک بکنن و دارن مش به آب میزنن اینا واقعا در این جهت عقب موندگی ذهنی که مقام معظم رهبری تعبیر کردن همه مادی دیگرها و جهان سلطه از این حقیقت بیخبرند و ما به یک حقیقتی متصلیم که این حقیقت رو اونا نمیتونند هرگز از بین ببرن جا الحق و الباطل یریدون علی یطفه اونورالله و افاهم با اینکه تجربه انقلاب را تجربه هشت سال جنگ رو داشتن، ما از که آمدن فتنه را در داخل ایجاد کردن بازم دست خدا از آستین بیرون اومد بعد از مدتها مسئله داعش رو اینها اومدن که کار سوریه رو لبنان رو عراق رو یکسره کنند، بعد به سوی ما بیاین در این جریان هم این رهبری بیدار الهی این الهامات غیبی این بصیرت مردم که از مکتب ساری و جاری شده است اینها را به میدان آورد مدافعین حرم ما کنار مظلومین رفتند و توطعه جهانی اونها در خاور میانه برای بار چندم خونسا شد. وقتی دیدند هر کار میکنن نتیجه عکس میشه بر قدرت ما افزوده میشه و از قدرت آنها کاست نمیشود. اون وقت است که از غیب اینا دن دن انگشتانشون رو به دندان باید بگیرن و خودشون رو گاز بگیرن و داد بزنن و عصبانی بشنن و این منشه این دزا این دعا رو در آخر زمان همیشه بخونیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب سب قلبی الادینی این مسئله برجام هم گرچه ظاهرش واقعا تل است. اون مقداری رو که اروپا به امریکا از این برجام سود بردند و در آن اونها نتیجه قرارداد را نقد از ما گرفتند به اون چه بنا بود به ما بدهن نسیه گذاشتند نسیه هاشون هم ندادند اما این مقدمه‌ای شد برای بصیرت مردم ما و برای بصیرت مسئولین ما که الغاءات بعدی شیطان بزرگ و عیادیش را قبول نکنند اونها اون القامی کردند که اگر در جام به این توافق عمدی نشود دشمنی اونها بیشتر می شود دیدید این توافق انجام شد و دشمنی اونها کاسته نشد و بیشتر شد اونها القا می کردند که اگر نباشه بیشتر میشه حالا که شد هم تحریم ها رو اضافه کردند پولهای ما رو گرفتن ساختمان ما را مصادره کردن و اخیرا گستاخی رو به جای رسوندن که سپاه ما را تحریم کردند. یک نیروی مردمی جوشیده از مردم مورد اعتماد امام و از تمرات انقلاب و وجود نازنین حضرت امام که در همه ارساها کارساز بوده مایه عزت و ما بوده و در کردن این مسئله داعش و تروریست ها دقیقه ایفا نخش کرده میان این رو تحریم میکنن بعد هم توتعه های دیگری رو مسئولین ما بدانند. حالا که دیدید شما که دیروز اعتماد قابل اعتماد میدانستید اظهارم میکردید امروز به همدلله این شجاعت رو دارید که اعتراف میکنید امریکا قابل اعتماد نیست بدانید در مسائل بعدی مسئله موشکی مسئله منطقی نفوذ منطقی منطقه ما اینا میخوان شما را خل اصطلاح کنند انگاه از ریشه نابودتون بکنند مناسبت های چندی بود این سرود ناتماممون مسائل گفتنی در این خطبه بسیار بود اما دیگر به همین مقدار فرصت ها را باید مستمع این من مستمعینمون نمازگزاران عزیزمون تصدیع طولانی نباشد یادگار بزرگوار حاج احمد آقای عزیزمون و ثبت امام راحلمون در ارتباط با حاجام مصطفی شهید مطالبی را بیان کردن استفاده کردیم خوشحال شدیم حاجام مصطفى رضان الله تعالی من یه عبارتی از مرحوم آیت الله آقای حاجه آرزا بهاودینی الله مقامه که فرمودن ابن الامام بل نفس الامام این پروند امام بود نه اصلا خود امام بود برای حاجام مصطفى الحق و بلانصاف جزد دردیت ها بود بلی خوب خدای متعالم امام رو خواست درفیتش رو به افتلا ابراهیم ربوه و به کلمات ابراهیم اسماعیل به قربانگاه برد ولی زفت نشد اما روح الله ما در این قربانگاه هم یه شخصیتی که حقیقت خودش بود در داغش نشست و هم به عبرونه و عبرونه نیوورد به اینجا هم درسی به ما داد مرحوم آیت الله آقای مهدوی کنی الله مقامه و شریف سیاستمدار پارسا استوانه از استوانه انقلاب معتمد امام و رهبری دارای آثار و برکات از میان ما رفتند. یادیم از مرحوم آیت الله حاجها جمال علی الله مقامه کم مرجع بود مثل آیت الله بهجت ما و هم عارف بود سالش الله بود احل باطن بود نسبت به میانبار دلها مجروح است همه باید کمک کنن وضع وخیم است 500 هزار آواره بدون هیچ امکاناتی حوزه علمیه قوم طلبههایی هایی که والله از نظر معیشتی جز پایین ترین طبقات هستند ولی همت کردن هشتاد میلیون طلبه ها از جیب طلبگیشون جمع کردن برای کمک به میانبار حلال احمر ما این آمادگی رو دارد یمن, یمن فاجعه انسانی است و من یقین دارم دست انتقام الهی از آستین بیرون خواهد آمد به انتقام این مظلومین را از امریکا از این سازمان دولت دروغین که اسم گذشت سازمان ملن از این مدعیان حقوق بشر از این کنفرانس اسلامی خدا انتقام خواهد گرفت دارند تماشا میکنن و این همه مردم در خطر قحطی قرار گرفتن در خطر بیماری هستند. زیر ساختاشون نابود شده سی هزار از مردم غیر نظامی زیر بومبهای بیرحمانه قارون منطقه این حکومت جعلی مستبد غیر متکیب مردم از بین رفتن ما هم اظهار دردمندی می کنیم هم المستقاسو که یبن الحسن اعوذ بالله من الشیطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر البسوس الخناس الذي يفسد في شدور الناس من الجنة بالناس خدا يا به حقیقت عزت زهرا به خمسه تاییه امام زمانمون رو برسان سلام و عرض ارادت و اعتذار ما را به محضر شریفش ابلاغ بفرما نسل جوان ما را به ساحل سامان و نجات برسان به دست جوانهای باشعور و متدین و پرشور ما مشکلات مملکت ما را مرتفع بفرما الا فروردگار و مریض ها منظورین خصوصاً شفای عاجل بی معونه مرحمت بفرما سایه پربرکت رهبر نورانیمون رو با عزت و کرامت مستدام بدار روح بلند حضرت امام و اسلاف صالح ما گذشتگانمون زب الحقوقمون شهیدانمون از ما راضی و خشنود بگردان و پر الله لنا و لکن و سلام علیکم و را.